نماز شام غریبان چو گریاغ آزم به مویه های غریبان قصه پردازم بیاد یار دیاران چنان به گریم زاد که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب محیمن و به رفیقان خود رسان بازم خدای را مددی ای رفیق ره تا من به کوی میکده دیگر علم بر افرازم خردز پیری من که حساب برگیرد که باز با سنمی تفت عشق میبازم به جز سباب و شمالم نمیشنا سدکست عزیز من که به جز باد نیستم سازم هوای منزل یارا به زندگانی ماست بیار نسی میز خاک شیرازم سرش کم آمد و بم بگفت روی بروی شکایت از که کنم خانگیست قمازم به چنگ زهره شنیدم که صوبدم میگفت غلام حافظ خوش لحجه خوشابازم